سفای پیشقراولان که به سردره اضام شده بودند قشون دولتی در ایوان کیف خیم زده بود یه پرمخان با مجاهدین ارمنی و ادیه از تفنگداران بختیاری و جمعی سربازان دولتی که عبدالله خان نایب هم از آن جمله بود در تهران مانده بود و قشون را آماده رودر رویی با شخص محمد علیم اضامی کرد و از طرفی توپخانه مجاهدین و فوج ژاندارم و بقیه تفنگداران را به مقابله با قوای شاه سلطنه و سالار دوله گسیل کرده بود اما زمانی که به تصویب مجلس برای دستگیری یا اعدام محمد علی میرزا جایزه نقدی تعیین شده بود شاه مخلوع را کسی به چشم ندیده بود شاید بود که دوباره به کشتی روسی که او را در گمشتپه استراباد پیاده کرده بود بازگشته و در انتظار آقابت کار نشسته است نایب عبدالله با همه وجود سرباز بود و آرزو داشت در کنار یبرمخان به جنگد که افثانه رشادتش را در فتح تهران و جنگ بادامک شنیده بود نه از مشروط چیزی سرش میشد از استبداد نه با ملیون هم رای بود نه با مستبدین فقط به دنبال سردار و سالار لشگری کار آمد که امنیت و آرامش را به مملکت بازگرداند و مردم را از شر بلبشو و هر جمعش نجات دهد از کودکی در قزوین وقتی از جلوی ساخلوی روس ها حسرت کلاه پاپاخی به سر گذاشتن و پیراهن قذاقی برتن کردن و چکمه بلند به پاداشنن و فانوسخه به کمر بستن را میخورد و بعد از نقل مکان به تهران هنگامی که از خیابان علماسی رد میشد و تابلوی اداره جلیله پلیس دارالخلافه را میدید دلش میخواست که آن دایره کار کند و از همان لباسهای ماهوت متحدر شکل کارمندان آنجا بپوشد و مثل آنها شمشیر ببندد و تپانچه داشته باشد وقتی بالاخره عبدالله خان در دوره مزفری به کار لشگری وارد شد اداره جلیله عنوانش نظمیه و امنیه بود و سردر علماسیه باب همایون بچگی عبدالله خان در انزوا گذشته بود از پدرش که مرد درشنندام و سخت شهری بود فقط خاطرات گنگ داشت و آنچه به یقین در بارش این بود که به جنون مرده است خواهرها و برادرهای بزرگتر که از مادر با او تنی بودند و پدر متشخص داشتند، او را هرگز به بازی نگرفته بودند و بعد از آنکه مادرشان چشم از جهان بست، به کلی تنهایش گذاشته بودند. از پدر هیکل مردانه را به ارث برده بود و از مادر اسباب صورت را و جز اینها هیچ عبدالله خان خیلی زود لباس سربازی برتن کرد اما تا به قوای گپرم خان نپیوسته بود سوای شهنگی شهر و پاس بیوتات کاری نکرده بود و جز خواباندن چند قائل شهری کارزاری ندیده بود از لحظه که وارد خیمگاه حیوان کیف شد انتظار جنگ واقعی را میکشید و با هر گروه و دسته و فوجی که روانه جپیم شد ویتاب بالا می گرفت عبدالله خان دوگانه ویتاب بود هم می‌خواست به میدان برود تا صلاح واقعی شود و هم خاتمه جنگ را ببیند تا به طور جدی به راه شکل دادن به خانه و کاشانه بیفتد قبل از ورود به خیمه زنش را که پا به ماه بود پیش مادرش به دهات غزین روانه کرده بود تا همانجا بماند و همانجا بزاید قصدش این بود که پس از بازگشته از جپه و بعد از خواستگاری رسمی از شمسلطنه هشتنامه زن را پیش از سر آمدن موعد عقد برایش بفرستد و نوزاد را به محض گرفته شدن از شیر از او بستاند. عبدالله خان نخش داشت که خواستگاری را هم قبل از رفتن به اردو انجام دهد ولی این مرگ هنگام محسن خان مانع از اجرای این قصد شده بود. در عوض تغازای ازدواج ناگذیر به تسلیت به خانه شمسلطنه رفته بود. اولین بار که عبدالله خان نایب شمسلطنه را در خانه محسن خان از پشت شیشه های رنگی پنجره حوزخانه خانه دید به نظرش آمد که مست شده است. مستی را در نوجوانی و در یلاقات غزوین آزموده بود به هنگام به بار نشستن تاکا و در فست شراب انداختن در خانه ها. مادرش او را همراه یکی دو رعیت ده پی دانه کردن انگور و پاکو به هبه ها فرستاد و او آستین ها را بالا میزد و خوش ها را از غید چوب و دانه های خرابش آزاد میساخت و دانه های آبدار را چون تیله های شیشه رنگارنگ به داخل چرخوشت می تا چرخوشت لبالب می بعد لبه شلوار را لوله می و و تازانو بالا می کشید و یکی از رعیتها روی پایش آفتابه آبی میریخت و عرق و گرد و غبارش را میشست و عبدالله پاها را یکی بعد از دیگری به درون چرخشت میگذاشت را پا میکوبید تماس پوست پا با انگور و فشاری که بر حبه های زدوده میآورد و نوای فس و فش ماگهی که از آنها جاری میشد انگیز بود جوشیدن و کف کردن آب رز با هر کوبش پا فزونی می گرفت عبدالله خباب را که بر سطح چرخوش چادر می‌زد، تماشا می کرد و می‌دید که بر جای هر یک آب سواری که پوست می شکافت ده گمبدا به دیگر از آب انگور می جوشد و سطح مایع را تاول تاول می کند انقدر پا می زد تا دیگر امکان سکیزه و جست خیز نداشت چون خون انگور لپر لپر از اطراف چرخشت سرازیر میشد و فقط میتوانست توانست پا به پا بشود و پاشنه را در قعر چرخشت بر دانه های دردگونه بماند وقتی تا چهار بند زیر زانو در آب انگور غوته میشد، می عبدالله پا از چرخوش بیرون میگذاشت. تا صوفچه انگور را که میان انگشتان گیر کرده بود و شتک نوچ آب رز را که تا زانو پاشیده بود با پارچه کرباس پاک کند روی چرخشت رنگ شراب صدگونه میشد، گویی که شدگیس بسته است وقتی عبدالله خان کنار می تا رعیت را در خمهای بزرگ سفالین خالی کنند و سر خمها را گل بگیرند و در گوشه انبار بار بگذارند مست بخار انگور بود از آن پس بارها مستی و بد مستی کرده بود اما هرگز رخوت و لذت آن شراب بیخمار را از یاد نبرده بود بعد از ساکن شدن در تهران هم هرگاه میسر می شد به هنگام چیدن چفته های مو به تاکستان های غزوین و اطراف غزوین برمیگشت و اگر دستی می داد پایی به چرخشت شراب می زد. عبدالله خان زنش را در یکی از این آمد و شدها جسته بود رعیت زاده ای که با دیگر زنان و دختران ده به گرفتن آب قوره و خاک کردن پنیر کوزه سرگرم بود عبدالله خان در آن زمان سبیل چخماغی گذاشته بود و تازه نایب شده بود بخارات و سمومات آب انگور در سر کنار جالیز هندوانه و خیار که بارش را برداشته بودند دراز کشیده بود و رفتار این دختر دهاتی را نگاه می کرد که یک سنبوله گندم به سربندش گیر کرده بود و هم رنگ زلف کاهی رنگش بود که بر عرق پیشانیش چسبیده بود و مجه بور در اطراف چشمان زاغش و در زیر نور آفتاب زال به نظر می رسید عبدالله خان دو شب دیگر هم در قزوین ماند تا دختر را سیغه کرد و به تهران آورد وقتی پای عبدالله خان نایب به خانه میرزا محسن خان باز شد از سیغ بودن زنش حرفی نزد چون در آن شاخه از خانواده این نوع کارها قبیه بود و روزی که شمسلتن را دید فکر کرد کاش زنداریش را هم پنهان کرده بود. از پشت شیشه های رنگین حوز خانه عبدالله خان باز جوشیدن و گمبداب بستن شراب را به دور سر و صورت شمسلطنه دید و خاطره مستی بی شرابش دوباره زنده شد و به نظرش آمد که حوری بهشتی دیده است شمسلطنه اولین زن بیهجابی بود که عبدالله خان نایب از نزدیک می‌دید. از آن پس در هر فرصتی و به هر بحانهی به خانه محسن خان می‌رفت. هم به منظور گرفتن ترفی به کمک آن خیش بانفوز و هم برای تجدید دیدار با شم سلطانه. بعد از شهست روز انتظار در خیمه یپرمخان به سر رسید و خبر آمد که قشون در طلوع روز بعد به سمت امامزاد جعفر و ورامین به راه میافتد تا با فوج ارشد دوله مصاف برود در حیابانگ تدارک نبرد تلگرافی برای عبدالله خان نایب رسید از طرف خواهر ناتنیش که مختصر روابطی با او حفظ کرده بود خدمت مستطاب نایب عبدالله خان از طرف کمینه همشیره نگر عیال ایال فارق و ملعصف مرحومه شد سر شما سلامت اولاد زکور به الله در عین آفیت مبارک است انشاءالله و تعالی آخرین خدمتی که زن عبدالله خان انجام داده بود تحویل دادن بسته منزده سلطنه بود به ملا صالح در قزوین که به دست سکین خانم برساند نایب در ارتفاعات ورامین فرصت فکر کردن به مرگ زن و تولد فرزند را نداشت همه ذهنش متوجه ارشد دوله بود که شهرت او هم در دلآوری دست کمی از یپرم نداشت نایب عبدالله ارشد دوله را در زمانی که هنوز جزء مشروط خواهن بود، همراه محسن خان دیده بود. چشم های نافذش را به خاطر داشت و سبیل تا بناگوش را و با آن سردوشی شرابدار و مدال های رنگ و وارنگ چه اوب و داشت. نایب عبدالله هم مثل ارشد دوله سرباز بود و در هر زمان به هر فرماندهی که خدمت می کرد تا پای جان به او وفادار می ماد. نایب عبدالله یپرم خان را به فرماندهی برگزیده بود او هم کم جلال و جبرود نداشت با آن قامت کشیده استخانی و چشمان کمرنگ و ریش و سبلت پر و صفاداده و کلاه پوستی و قطار فشنگ کمری و موزری که حکم انگشتان دستش را داشت وقتی فرمان به فنگ میداد اگر ته یک تفنگ فنگ بر زمین بود از یک فرسخی میدید بی خود نبود که آن همه فدایی داشت نایب عبدالله همراه گروه اولی بود که یه خان از بیراهه به طرف مواضع خسم فرستاد از ای که به راه افتاد خاطره روزهایی که به شکار میرفت در سرش جان گرفت و هوای عصبی را کرد که او را با یردقه و یرتمه و تاخت به شکارگاه ببرد اول بار که اسب به زیر ران گرفت آنقدر تاخت زد که پوست کشالش ورآمد و نفس اسبش برید و دست خالی از شکار برگشت چون چنان بیگودار به کنار جزار میزد که گداری ها تارانده میشدند و به هنگام پرواز بر نمیدادند. اما خورده خرد خورده چابک سوار شد و مثل تازی شکار را بوم کشید و بی صدا به طرفش بی رفت و تیهو و چکچکی و بلدرچین را طوری می جهاند که امکان قرابل رفتن داشته باشد حتی در باد تند و هوای قبارالود کمتر بدتیری داشت اما در این جنگ نایب عبدالله اسبی به زیر پا نداشت نیم راه را تا جایی که در پناه بلندی ها بود همراه دیگر سربازان با قدم های سبک و سری پیمود تا به تپه ای رسید که به دستور یپرم باید تا تیغش می رفت تپه شیبی توند و خاکی نرم داشت و سینه از آن بالا رفتن افتان و خیزان میسر بود خصوصاً که عبدالله خان ششلولش را هم به یک دست برخنه و آماده با خود می برد عبدالله نایب همچون همراهان بر سینه تل می خزید و پیش می رفت. گاه صدای تق شکستن چوب خشکی زیر فشار چکمی یا خش لغزیدن و زل شدن هیکلی نفس را در گلوی نایب عبدالله حبس می کرد که وای شکار پرید از گرمای هوا آگاه نبود ولی تمام بدنش از حیجان کاری که در پیش داشت به عرق نشسته بود و گرد تپه روی پیشانی و گونههایش گل شده بود از گذشت زمان هم بی خبر بود نمیدانست یک روز است که بر گرده تل آویزان است یا یکصد روز سینه بر خاک می مالید و به کمک پاشنه پا که در دل خاک فرو می و پنجه دست که به قلب سنگی چنگ میزد خود را بالا می کشید. تنها هنگامی که به تیغ تب رسید و چشمش برق اراده توپ به دشمن افتاد به نظرش آمد از ظهر است و آفتاب همه همه بر او میتابد حبدالله خان نایب از همقطاران که جنگیدن اکراد و تراکمه را دیده بودند شنیده بود که کردها و ترکمنها مثل گردباد به صفح حریف میزنند شمشیرهای آخته را به دور سر میگردانند و ول ولکشان دشمنان را چون ساقه های گندم درو میکنند و از هیچ خسم باک ندارند اما به هنگام رسیدن قوای یپرم به قله بلندی توبچیان ارشد دوله دور از اراده ها گله به گله به حرف نشسته بودند یکی دو نفری چپق دود می کردند و چند نفری دیم خسبیده و بردست لمیده خستگی جا جایی های سریع روزهای گذشته را از تن به در می بردند و اگر انتظاری می‌کشیدند، انتظار دستور حمله بود نه هجوم دشمن سربازان یپرمخان جنگ جودان ارشد دوله را قافل گیر کردند و با حلحله به طرف اراده های توب حمله بردند و بشان کردند به گریز و آویزی دیگر نیاز نبود جنگ در همان لحظه به فتح لشگری پمخان تمام بود از کارابین و فشنگ و صندوق مسکوکاتی که از قشون ارشد دوله به دست قوای ملیون افتاد دو تفنگ و یک مشت فشنگ غنیمتی بود که نایب عبدالله به چنگ آورده بود اما سرباز پایان جنگ را در نمی از لحظه ای که حکم آماده باش میگیرد در حال رزم است تا زمانی که فربان آتشبس را میشنود آتشبس این جنگ برای عبداللهان در غروب روز زفر و با پخش خبر اسارت ارشد دوله اعلان شد یکی از همقطاران در اردوگاه به عبدالله خان گفت ارشد تیر خورده زیر چادر سرداره نایب پرسید زخمش کاریه همقطار دیگری جواب داد وقتی قرار اعدامش کنن جراحت میخواد کاری باشه میخواد نباشه چه فرق میکنه؟ عبدالله خان بی اختیار گفت حالا شایدم اعدام نکنن نه یپرم خان دستورشو صادر کرده جوخه من برای اعدام تعیین شده هر شدم وسیعت رو کرده عبدالله خان پرسید چه هم همقطار اولی جواب داد خواسته که مدال تلایی که به گردن داره با زنجیرش به دست زنش برسونن هم قطار دیگه گفت نه خواسته با مدال و زنجیر چالش کنند برای زنش روغه نوشته نایب عبدالله از آغاز جنگ برای اولین بار به زن مرده خودش فکر کرد و به پسر ندیدش به اشکی در چشم گردان در میدان اعدام جاندارم و فرماندهشان و مخبران خارجی و نمایده خزاندار کل گرد آمده بودند وقتی سربازان به طرف ارشد دوله قراول رفتند از تری سور دوان دوان رسید و میان جوخه و محکوم حائل شد یکی از سربازان پرسید چرا میگن سور از گل دور؟ آخه معروف اصبغاتر سور بد شکونه عبدالله خان که صحنه را از دور شاهد بود و همه یه هوش و حباس را در چرش ریخته بود و هم قطاران گفت شاید این یکی برای ارشد 900 نداشته باشه به شفاعت اومده اما دو تفنگدار از تر راه ای و از محبت راندند ورشد دولک با چشم و دست باز روبروی ژاندارم های ایستاده بود در تمام مدت مجگان برهم نزد و از جا تکان نخورد وقتی مراسم تیرباران به پایان رسید نایب احساس کرد تمام قبار تپه در گلوگش خانه کرده است و به صدایی پرخش گفت سرباز رشیدی بود، مردان مود و هم ردیفان تصدیق کردند. عبدالله خان نایب از این مساف با وعده ترفیه درجه از یپرم خان و چند داستان از دلاوری های عرشد دوله به تهران بازگشت